بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين اما بعد سی وحفتمین درس اززروس شمویل رسول الله علیه صلاة والسلام تالیف امام ترمزی رحمه الله واسکن فسیح جناته چلو ششمین باب چلو ششمین باب باب ما جاء في فراش رسول الله صلی الله علیه وآلیه اون چیزی که درباره تخت خواب رسول الله صلی الله علیه و و سلم آمده و اون دو یا تشکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روش می‌نشستن و رسول الله علیه و سلم روش می‌خوابیدن فراشه چیزی که فرش میکنن پایین و خصوصا اون چیزی که در منزل داشتن رسول الله علیه الصلاه و السلام معمولا اون چیزی که رسول الله علیه و و سلم ازش استفاده می‌کردن از پشم گوسفند بود هرچند که چیزای داریم که اینجا در احادیثی که خواهیم خوند وارد شد. سيساد من حديث أمامة المذي رحمه الله ميقياد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف در صحیح بخاری این فراش رسول الله صلی الله علیه و علیه آدم حشوه لی فنجام من آدم حشوه لی فرق نمیکنه هر دو تا یکی بعد اینجا من اضافه هست حدیث در صحیح بخاری و مسلمه نما تاکید از امه حاشه بر فراش رسول الله عز و جل رخت خواب یا اون دوشکی که روش میخوابیدن و مینشسته خصوصا اینجا بحث فراش است که رسول الله صلی و آله روش میخوابیدن من آدم آدم چرا من آدم چرم یا همون پوست حیوان که دباغي شده حش لیف حش داخل دوشک معمولا خب الان پنبه هست میذارن توش پنبه حالا چه مصنوعیش چه طبیعیش و الی آخر دیگر چیزای دیگه بخواد باشه چه پنبه باشه, باشه چه پشم حیوان باشه حالا هر منطقه بر اساس اون سرما و گرماش نزد عرب ها خب گوسفند زیاد نبود که از پشم گوسفند استفاده بکنن پنبه هم که نبود بیشتر چیزی که استفاده میکردن لیف نخر بود لیف نخر اون چیزی که دورابش شاخ درخت نخل که حالت الاف مانند داره ریشه ریشه هست انگار ریشه درخته یعنی یه چیز پارچه مانند هست این شسته میشه بعد از شصن هم تناب درست میکنن هم لابلای اون چرم ها میگذاشتن و به عنوان یا توشک ازش استفاده میکردن عرب همچنا هم استفاده میشه یعنی چون خصوصا نخل معروفه هیچ چیزش پدر نمیره هیچ چیزش دورانداخته نمیشه همه چیز نخ قابل استفاده از بخاطر خاطر همین رسول الله علیه و وسلم تشبیه مؤمن را به درخت نخل میکنه مؤمن را تشبیه به درخت نخل میکنه از باب اینکه همه چیزش رو در بخوره. از یه طرفی بحث اهمیت نخلم هست خود نخل و اهمیت دادن بهش که بالاخره خب از من درخت ها رسول الله صلی الله علیه و به عنوان کامل ترین درخت ازش یاد میکنه خب اینجا رسول الله علیه و این جای خوابش بوده که روش میخوابید از تخت خواب خشن نه نیست لطیف نیست اون لیفی که اینجا یاد شد نه اون لیفی که در فارسی زبانها هست و از میوه گرفته میشه و تو آبتنی ازش استفاده میکه برای شسوشو و اینا نه این لیف منظور از اون علیاف درخت نخله که به شاخه ها چسبیده خب خشنه خشکه چرمم که روش کشیده شده بازن خشکه حتی تا جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که بهش گفته میشه زمانی که خوابیده بود روی حسیری که از برگ های درخت نخل بافته شده بوده بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام بهش زمانی گفته میشه خب برات یک فرشی حداقل یک پارچه میندازیم یک چیزی که حداقل راحت روش بخوابی که جای اون دیگر روی تنت نیفته اصلا عیسی تستم ناراحت میشه میگه مسائل من مثل کسی که زیر درخت اومده استراحت بکنه بره من نیومدم که اینجا بمونم که میخوام چه کار کنم با خودم میخوام ببرمش تواضع رسول الله علیه و السلام هست و عدم اهمیتش به این مظاهر حالا چی باشه که روش بخوابه مهم اینه که بخوابه مهم اینه که این خواب وسیله باشه برای رسول الله علیه و السلام که به عبادت الله جل و علا بعد از اون خواب بیسته و خسته نشه هم مغمش عبادت الله جل و علا. هم مغم رسول الله علیه السلام برخلاف مها که اون زینت دنیا برمه مهمه و هزینه برای زرق و برق دنیا زیاد میکنیم رسول الله علیه این چنین تواضع داشت این چنین ساده بود در زندگیش و در نحوه خوابش و اون چیزی که روش میخوابید سيسد بسنه من هدث موامة المذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن نبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الاولى فانه منعتني وطئته صلاتي الليله حديث ضعيف زافه شم شديده ابو قطر عبد الله بن ميمون قبل ان بعض از اسانید ما داشتیم متروکه و حدیث ضعیف ضعف شدیده البته قسمت اولش که امون عاش ازش نقل میکنه بعد اله ها که قفراش رسول الله صلی علیه و سلم چگونه بود اون رخت خوابش گفتن که چرمی بود که حشوش اون چیز داخلش از لیف و از اون الیاف النخل بوده. از اونین حفظ سوال میشه که چی بوده در خونت میگه که فرش رسول الله علیه و سلام یا همون رخت خوابش ک فرشی که روش میخواید. از پشم گوسفند بوده. پارچه ای بوده از پشم گوسفند که تاش میکردیم روی هم دیگه دولایه. و رسول الله علیه و سلام روی اون میخوابیدم میگه شبی گفتیم با خودمون. حالا کی بوده؟ الله عالم پیشش که اینو به جای دولایه چارلایش بکنیم. چهار تا باشه که رسول الله علیه الصلاه و سلام دیگه نر بخوابه. رسول الله و خوابیدند و چار لایش کردیم. رسول الله صلی علیه و صبح که میشه میگه که چی فرش کردی بودید که من روش بخوابم؟ گفت که خواب فراشته فقط ما دو لایه و لایش کردیم که نرتر راحت تر بخوابید. بعد اونجا رسول الله صلی علیه و آله میفرمایند به حالت اول بر بگردید چون دیشب مانع از نمازم شده یعنی که شب راحت خوابیدم به نماز بیدار نشدم ولی خب حدیث ضعیفه. حدیث ضعیفه. مشکلی نیست که انسان فراشش خوب باشه، روش بخوابه، راحت بخوابه. مهم به نماز بیدار شدنه و اینکه اینجا رسول الله صلی وسلم من کرده باشن از این بیده و خصوصا اینکه که حدیثش هم زرفش خیلی شدیده در امور دنیا رسول الله علیہ السلام می فرمه اعلا امور دنیا کو. شما به دنیا خودتون آگاه ترید بالشتون چی باشه از پشم از چرب شما این دنیمونه الان تو حدیث داشتید اون دیگه به دست خودتونه فقط زیادروی به اسراف در زر و برق دنیا نکنید، هی hey, عوض بکنید، هی hey, نمی‌دونم، حسین اونایی که قرآن نمیخونن تو خونه، زنایی که اهل دنیا هستن، همیشه میخوان دکور خونه عوض بکنن، همیشه میخوان رخت خواب عوض بکنن، همیشه رو تختیشون میخوان عوض بکنن، فکر میکنن که حال روزشون عوض میشه، روحیه‌شون عوض میشه، مثل موبایل‌ها، موبایل دستشون بهتره، موبایل دستشون، هی جدید میاد، دوباره هزینه میکنن، دیگه روش میذارن، دیگه این موبایل عوض کن، این نمیدونم چیز عوض کن، فکر میکنن که میتونن تغییر روحیه بده نه روحیه بینوز نمیشه الله القلوب. اول آخر دواهای روح جان تن روان قرآنه دیگه دنبال چیز دیگه نگرد نه اینکه فرشت از عبریشم باشه نمیدونم تخت خوابت از طلا باشه و نخوره باشه هر کدومم باشه آخرش سیر میشی و برات تکراری میشه دل انسان از دنیا سیر نمیشه همونطور که رسول الله عائسته و سلام میفرماین اگر انسان یک سرزمینی از طلا داشته باشه دوست داره که دومیشم طلا داشته باشه سیر نمیشه احساس همونطور که رسول الله عائسته و میگه این چیزی انسان رو سیر نمیکنه ل خاک گور که روی سر انسان بریزن تا انسان زنده است فقط میخواد دنیا جمع بکنه برای خودش اینها درسایی هست که خصوصا از شمایل رسول الله صلی الله میگیریم عدم توجه به زر و برق دنیا ولی اون راحتی خودمون اون سلامتی خودمون اون دیگه ما آگاه داریم بهش فقط اسراف نکنیم در تبذیر نیفتیم زیاد روی نکنیم 47 ام این باب باب ما جاء في تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ترمذی اینجا این باب رو گذاشته در فروتنی تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اومدنش نرمی شکست نفسیش تواضع یه کسی اشتباه میکنه تو مظره قای میکنه یه کسی در حقت بدی میکنه اونجا باید ناراحت بشی ناراحت نمیشی تواضع فروتنی تو از حق خودت کوتاه اومیاگ حق مالیه، حق نمیدونم، ادبی اخلاقیه بدی بدت کرده، پشت سر صحبت کرده، غیبتت کرده رسول الله علیه زیادت واسم برایش مهم نبود کی پشت سرش صحبت کرد؟ کی غیبتش کرده، کی نمیدونم فلان کرده، توازه داشت، این تواضع. اینکه این که دنبال انتقام نباشی، این که دنبال این که حق تو بگیره از دیگران به زور و تندی خشونت نه، رسول الله علیه و واسم از شکست نفسی. نشکست نشکسه نفسی که خودت ذلیل کنی، خار کنی، سرتو پایین بندازی و بعد هرچی چی بهت گفتن و بعد تو از خودت دفاع نکنی، از دین دفاع نکنی. نه نه نه نه. اون عزت رو حفظ کردن یه طرف قضیه است. عزت دین عزت استقامتت بر یه طرف قضیه است. و بحث این که تو خودت بدی میشی، تو خودت بدی شدی، انتقام نگیری و مسئله دیگه است. این که انسان زبانی صادر داشته باشه حقگو باشه امر معروف از منکر بکنه اینا منافاتی با فروتنی نداره با کتا نداره کتا همده فروتنی در امور دنیا نه در امور دین در امور دین و ما اتاکم الرسول و فخده و طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق الله میگه و عنه بنتهو پیغمبر بهتون چیزی گفت دیگه نه گو پدرم گفت مادرم گفت دوست مادر دوست ما و ورسول فخذو پیغمبر گفته رو سر چش بزاره نه پدر نه مادر نه دوست نه رفیق نه دولت نه هیچ کس فخذو بگیر نهاكم و ما نهاکم عنه فنتو الناهیک رسول اساته و سمات چیزی تماش رف فاین تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول در چیزی اختلاف کردی ببین الله ورسولش چی گفته دیگه نگگی این فلانی گفته فلانی گفته رسول الله علیه و آله لا تعطیل تعطل مخلوق فی معصیت الخالق نبویات پیروی از کسی بشه در معصیت خالق در معصیت الله جل و چیزی گناه تنزیکش نشو این فروتنی توازه در تعامل در رفتار برخورد دنیوی هست نه در امور دین در امور دین باید محکم باشید فاستقم كما امرت چنانچه امر شده استقامت کو سفت محکم فاستقم ثابت قدم باش در امر دینت ثابت قدم در امر دین دیگه شکست نفسی نیست در امر دین دیگه کوتاهی نیست در امر دین دیگه چیه در امر دین دیگه وضوح روشنی استقامت و دفاع از حق 360مین حدیث أمام الترمذي رحمه الله بقياد حدثنا أحمد بن منيع والسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله حديث السحابية السحابية للبخاري ومسلم عبدالله بن عباس صحابی، عمارم نخاطم صحابی که بزرگتر از عبدالله بن عباس. میگه شنیدم عبدالله بن عباس که عمارم میگه شنیده رسول الله علیه و سلم که نمیفهمی آیا نه؟ لا تطرُونی که ما اترت النصارى. و غلو و زیاد گویی در حقیه کسی، کسی بیا توری کسی ازش تعریف کنه، ازش تعریف کنه. رسول الله علیه و سلم میگه که درمان اترانه کنی، در من, من زیاد رفی نکنی، درمان مدحستایش. خب این توسعه رسول الله علیه سلام با صحابش خصوصا این که رسول الله علیه سلام دشوارشیفتیگی و, و عجوب وینانمیشن. یعنی بالفرض اما ازش تعریف بشه حقشه سرور عالمی و مثل ما نیست که سرمون با پامه برودی بشه و با اون تعریف و تمجید گول بخوریم، فریب بخوریم. بیایم مثلا یک شخصی بیاد از ما تعریف بکنه بخواد تو فلانی تو اینتری تو, تو این تو فلانی که دیگه یه پولی یه چیز اذت بکشه. رسول الله علیه سلام کسی نبود که مثلا اون توش تأثیر بذاره. خوبادر میتونه تشخیص بده میتونه عزت نفس خودشو حفظ کنه میتونه رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمه که طرف قصشو اینا چیه الله جل و علا بالاخره نصرتش داده با وحی ولی که وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای درس باشه برای همه دیگران یاد نگیرن حالا بگن فردا محمد ترا صلی الله علیه و سلم کردیم و چیزی نگفته دلیل باشه میگن حق ندارید حتی مدح من حتی تا که یکی اومد نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و گفت که انت و انت کذا و کذا فورن رسول الله صلی سيد الله و الله سید الله سید و سرور الله من میکنه سید من در روایت دیگه قولو بعض قولکم ولا يا سهويا انکم شیطان قولو بعض قولك بعض قولکم یخایین یک حرف یه چیزی بگی اشکال نداره یه چیزی که باشه ولی دیگه زیاده روی نکون شیطان گولت نده خدا رو فراموش نکن بیچسه بنده خدا بخاطر همین اینجا در اول حدیثی گفت انما انا عبد من بندامه من بندام سرای من دیگه نکنید من بندم بالام نبرید مثل نصارا که غلوف کردن در عیسی تا جای غلوف کردن زیاد روی کردن که گفتن که عیسی فرزند الله جل و علی احتراحه زیاد عبد فقولو عبدالله و رسوله بگید بنده الله و پیغمبرش خب ما این گویی ها در شحن رسول الله زیاد داریم خوصا در مجالس مولودی با اون کتاب هایی که میخونن مثل برزنجی یا مثل اون برده مال گوسیری هست تا اینجا خب نه؟ رسول الله تعالی میگه مثل نصارا شما نیایی اونها مدح عیسیٰ علیه سلام کردن تا رسوندنش به درجه خدایی گفتن فرزنده الله جل و علیه هست خب الان همین صاحب کتاب برده بوسیری چی میگه در مي مي مدح رسول عیسیت و سلام میگه دعمت دعتون نصارا فی نبیه و قول فی نبیه نماشه آخر میگه ولکون نصارا درباره پیغمبرشون چقدر مدح گفتن گفتن فرزند خداست و فلانه نه تو درباره پیغمبر پیغمبر هرچی میدونی بگو هر چی میدونی تا جایی که میتونی مطلب پیغمبر بگو علیه عزادت و سلام که دیگه بعد میاد میگه نوره و فلانه و انت فوق نوره و از نوری و بالاتر از نوری الله نوره الله نور سماوات و الارض این بنده است رسول الله صلی الله علیه و آله میگه انما انا عبد فقولوا عبد الله و این متاسفانه خیلی ها بهش دوچار شدن خوصا از فرقه های تصوف در ادعای محبت الله علیه ست و سلام سوست افاده کردن از محبت مردم به رسول علیه ست و سلام و اومدن از این در وارد شدن از رسول رسوله علیه و سلام تا بتونن دل مردم رو به دست بیارن مردم را به طرف خودشون بکشونن و یک وسیله باشه برای سواری گرفتن از مردم الا خصوصا اون اصحاب طریقت اون شیوخی که بیعت می گرفتن مردم وادار میکردن که پول و سرمایه‌شون به عنوان اینکه اینها متولی امرشونن و اینا ولی خدا هستن بیان مردم کل داراییشون تحویل اینها بدن اگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم میخوندن دیگه اینجوری فریب نمیخوردن فریب این دجالها که سوء استفاده میکنن از سیرت رسول الله علیه و السلام برای فریب دادن مردم انما انا عبد صلی الله علیه و سلم من بنده بنده هست خالق نیست رازق نیست پروردگارم نیست، رزاقم نیست بنده است. رسول هم وظیفه داریم در مقابل رسالتش، هر فشو پیش نمیم و هر شنوی ازش داشته باشیم تا حد بکنیم خب حالا بر بگردین دوباره به خط قبلی چقدر از اونها از اون شیخ طریقت و اطرافیانی که میشینن پای مولودی به سنت رسول الله علیه الصلاه و السلام پای بندن. ما داشتیم در شمائل ریش رسول الله صلی الله علیه و السلام پرپشت بود از پشت دیده میشد روشاش بزرگ بود پیراهن رسول الله صلی الله علیه و السلام تا نصف بود نماز رسول الله علیه و از نصف شب بعد بود تا صبح رسول الله علیه و همیشه در مسجد با اصحابش و یارانش نشست و برخاست داشت کبر نداشت که گوشه بگیره و با کسی با کبر و غرور برخورد بکنه تواضع رسول الله صلی الله علیه و فروتنیش، فروتنی ش نشاستو پایبندی به سنت ها و نوافلش زباست همه بود خب الان این شیخ طریقت و اطرافیانشون چقدر به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله پایبند نمازهای سنتشون چه از تهجج نوافل و راتبه چه از شکل و شمایل ریشاشو چه قدر تو زمینه غیر از اون لباس شهرتی که می با رنگهای مختلف شما برید چیوخه طریقت رو بزنید سرچ کنید اصلا تو گوگل بزن چیوخه طریقت لباسا شو نگاه کن لباسی رنگ و رنگشون هیچ کدومشون شکل و شمایل رسول الله علیه الصلاه و السلام ندارن نه خودشون نه دوربری‌هاشون انما انا عبد الله و رسوله بنده ی الله هم حق نداری منو از بندگی بالاتر ببری این توصیه رسول الله علیه و سلام. این یک طرف طرف دیگرش چون برم تو باید از من پیروی بکنی شکلت، شمایلت، رفتارت، منشت بود رسول الله علیه السلام باشه نه زیاد روی و نه هم کوتاهی نه غلوف بکنی به حدی که فقط کارت باشه شعر گفتن و شعر سرایی و بچسبی به مدداحی نه غلوف کردن و نه هم کوتاهی کردن جفا رسول الله علیه السلام حق به گردن ما داره که او را بشناسیم شمایلش رو بخونیم حادیثش رو بشنویم نه کوتاهی بکن ونازي يدرى بي نازي يدرى بي كأس أسغى في المشي أسعم الكادن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيساد السيويكمين حديث إمام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويت بن عبد عزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئتي أجلس إليكي حدیث صحیحه، اصلش در صحیح مسلمه و حتی خود انس رضی الله هم میگه این زن مشکل در فهم و در درکش هم داشت. ولی با این وجود، با این وجود که این زن مشکل داشت. از سوازو رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و فروتنیش در امر دنیا نکنید زنیه تو کوچه او را گیر میاره بگه که یا رسول الله علیه صلات واسم حاجتی دارم، حرفی دارم میخوام بزنم. رسول الله علیه صلات واسم بهش میفهمه اج بشین هر جایی دوست داری فی اگه طریق المدین هر کوچه هر جایی از مدینه خاصی بشین اجلس الهی من منم با تو میشینم تا آنجا حرف تو بشنمم کجا دوست داری بشینی؟ کجا دوست داری بر خلاف چی؟ بر خلاف تجار و ثروتمندان و نمیدونم الا اشراف که دوست دارن سطر مجلس بشینن وسط مجلس بشینن و همه بیان براش بلند بشن نه نه رسول الله علیه و صل و صحه در احادیث دوست نداشت کسی براش بلند بشه و می به صحابه پرهیز میکردن الله علیه مجمع که جلو رسول الله علیه و بلند نشن حتی و برای خودشم ابن میشورد اگر تو کوچه جایی می نشست خوصا اینجا زنه که حاجتی داریم زن میخواد حرفی داره میخواد الان درد و دل بکنه مشکلی داره چیزی داره مشورتی میخواد حرفشو بشنوه خودشو بالا نمیگرفت برخلاف طلاب علم و شیوخ امروزی که اینقدر بینیشون بالاست باید به خاطر اینکه مشکلی داری بخوایی دستت بهش برسه باید از هفت خان رد بشی اصلا دست تمیتوری بهش رسه. کلاسش بالاست سروتمند میتونه دستش بهش برسه ولی آدمای عادی تو مسجد اگر کسی اومد سلام بهش بکنه دسه شو میکنه سری که میخواد بره بیرون نمیخواد حرفشو بشنبه این اخلاق رسول الله علیه الصلاه و السلام نبود بعضیا خصیسن حتی نسبت به یک لبخند اصلا لبخند تروشون هم نمیاد انگار که مردم مالشو خورده رسول الله علیه الصلاه و السلام از فروتنش که با همه میخندید با همه مینشاست خوش اخلاق خوش برخورد با همه بود سي سدو سي حديث أمامة الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعوار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف حديث زيفة منافاتی نداره با البته احادیثی که یاد شده خصوصا توصیه خود رسول الله علیه و سنت و میگه که رسول الله علیه به عیادت مریض میرفت نه که مریض مسلمان باشه و حتی یهودی هم بچه‌اش مریض میشد رسول الله صلی الله علیه و میرفت به عیادتش بچه یهودی مریض میشد میرفت به عیادتش مثلا من شنیدم بعضی از دعوت مثلا میگن که نه مردم ما رو تحویل نمیگیرن مردم نمیدونم ما رو قبول ندارن یا تو شهرش امام جمعه است یا شیخیه خب درد و دل میکنه میگه خب چرا مردم اینطورین چرا مردم ازش زده شدن یا نمیخوانش خب تو نه جنازه جنازه‌شو میری نه به یادت مریدشون میری نه باهاشو میشینی نه بهشون موهل میری بعد میخوای مردم هم تو رو دوست داشته باشن مردم هم تو رو بشناسن مردم هم تو رو تحویل بگیرن نمیشه که رسول الله علیه و السلام توصیه میکردن و خودشون هم اهل این کار بودن یعنی میرفتن به سراغ مردم پیش مردم در غم و خوشحالی مردم شریک بودن در غم و خوشحالی مردم شریک بودن و با مردم بودن یک وظیفه هست یک وظیفه هست خصوصا اونهایی که اهل دینن اهل دینن باید اخلاق خوبی از خودشون به نمایش در بیارن باید پیشتاز باشن در امر خیر در نشر دین نشر خوبی دین کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و سلام یعود المریض و یشهد الجنائز میرف در جناز مردم شرکت میکرد که واضحه روزی زنی در در مدینه فوت میشه رضی الله عنه اون زنه مسجد پاک می‌کرد دفنش کردن رسول الله صلی خبر ندادنش که این زنه فوت شده اومد گفت این زنه نیست گفت که فوت شد دفنش کردی. چرا من رو خبر ندادید رفتن تو قبرستون همون روز البته رفتن تو قبرستون رو سر قبرش ایستادن نماز خوندن روش دف شده بوده که دعای خیرش نصیب اون زنه بشه زنه مسجد پاک میکرد. مؤمنه اهمیت چی میرسونه همیت تشییع جنازه و شرکت در جنازه‌های مردم و اهمیت دادن به این قضیه غیر از احادیثی که اومده حتی تو به تعزیه رفتنت تو جامعه سبز رنگ بتنت میشه وقتی که تو تعزیه یک مؤمن میکنی وقتی که تو تسلیت بهش میگی مجرد تسلیت گفتن و رفتن پیشش که دلداریش بیدیا جامعه سبزی کرامت خاص برای تو الله جل و گذاشته در بهش که تو رو با اون خب تو چرا خودتو محروم میکنی چرا خودتو بالا گرفتی به چی خود مینازی خیلی وقتت گران وقتت خیلی عزیزه نمو میخای بخوری تو چاییه که صرف میکنی میل میکنی جلوت میذارن نیم ساعت واش میشینی یک نماز خوندن که نیم ساعت طول نمی کشه. کل جنازه با شستنش و دفن کردنش یک ساعت نمی کشه و نهارت و شامت خودش تا ساعت طول میکشه کشه متاسفانه همه چیز کلاس داره و دنبالش هستیم الا اون امری که ما و عنوان یک وظیفه به گردنمون هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم توصیه بهش کردن درست که این حدیثی ضعیفه ولی گفتم همه این مسائلی که اومده جزء چیزایی است که رسول الله علیه و واسم عمل بهش میکردن و توصیه میکردن نه که تنها عمل میکردن توصیه بهش میکردن و یه الحمار توازهای داشت حالا چون رهبر مسلمان هست سور اولغ نه چه نصه سور اولغ میشد و یجب دعوت ال عبد اگر بردی هم دعوتش میکرد میرف پیشش دل کسی را نمیشکست دل کسی را نمیشکست حتی برده دعوتش کرده حتی میاد در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگه و سخون پاچه هم ما را دعوت بکنید میام پیشتون تواضع رسول الله صلی الله علیه و آله و کان یوم بنی قریظه علی حمار مختوم بحبل من لیف و عليه اكاف من لیف بنی قریظه قصشون که معروفه عهد رو میشکنن با رسول الله علیه و آله در جنگ احزاب عهد رو میشکنن و میرن هم پیمان میشن با مشرکین رسول الله علیه و السلام دیگه اونجا میره به سراغشون برای مقابله با اون اهجکنا کشته بشه جنگ با اون اهجکنای یهود سران یهود از مرداشون که دیگه به خاطر قدرشون کشته بشه این دیگه شرع دین الله جل وعلا سوار چی بودن رسول الله علیه و السلام در اون نبرد در اون جنگ در اون حمله ای که داشتن سراغ بنی سوار الاغ اون طلابی که سر هیمون باش بسته بودن سر علاق بسته بوده باش از لیف بوده از اون کنابی که از علیاف دور شاخ و برگ نخله و حتی زینی که روی اون علاق بوده هم از همون لیف بوده از همون لیف نخلی از همون علیافی که مساحت هات ریش ماننده گفتیم که دور شاخه نخله پارچه و نمیدونم فرش خاصی و چیزی و زین خاصی باشه نه نه خیلی راحت ساده معمولا اکاف برذعم گفته میشه اون چیزی که روی علاغ گذاشته میشه از اون زین و سرجم اون چیزی که روی اسب گذاشته میشه و رحلم اون چیزی که روی شطور گذاشته میشه از اون زین گفته میشه 333مین حدیث امام ترمذی رحم الله میگه حدثنا واصل ابن عبد الاعل الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن العمش عن انس بن مالك رضی الله عنه قال كان النبي صلی الله علیه الى خبز الشعير والإهالات السنخه فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هارتش انكينجو دراسناد ضعف بس خو همين روايته ما در صحيح البخاري دارين از روايه انس كي ميگيد مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخه ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينه عند يهودي واخذ منه شيئا لاهله اسل حديث صحيح عشان كان جو اسناد درشن قطاده چون عمش از انس رضي الله عنه شنيده خب امام بخاري با سند دیگر از قتاده از انس روایت میکنه که سندش متصله اونجا همین لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت میشدن به چی بنانی از جو نان جو، نان خشک جو که خوشتر از نان گندم چون نان های سبوست دار خوشتر معمولاً از نانهایی که از گندم درست میشن و ال احالتی از سنیخه ال روغنی هست که معمولاً برای نرب کردن نون استفاده میشه یعنی اون نونشو میزنن تو روغن به عنوان یک خورشی ازش استفاده میکردن. از که سخن شده یعنی رنگش بوش و تمش عوض شده مونده یعنی این نبوده که تازه باشه حالا تازه اون روغنی گرفته باشن از حیوان یا از اون چکیده ماست و غیر گرفته باشن یا روغنی زوب کرده باشن تازه آورده باشن نه رنگش عوض شده بوشم عوض شده مونده ولی بای بوجه رسول الله علیه و السلام رد نمی کرد از همون هم می خورد این استواز رسول الله علیه الصلاه و السلام ای نمی گرفت سر سفره نمی نشست می خورد دوست نمی شد می که این مثلا مثلا گوشه سوسمار برای رسول عث و سلام آوردن گفت که طعام اهل ما نیست یعنی ما عادت نکردیم با این غذاها ایراد نگرفتن نخورید یا این خوب نیست یا این بد مزه است این تند این فلانه نه تو دوست نداری بقیه شاید دوست داشته باشن ابن گرو غذا هر کسی با سلیقش مادامی که حلاله این تو بچه همون یادشون بدیم که لوس بار نیان. چون اینها سبب میشه که انسان بشه کب بشه غرور بشه خصوصا وقتی که تنوع غذایی باشه و بخواد انسان رو هر چیزی ایراد بگیره بعضی از پدران اینطوری بیان سر سفره نشستن امروز غذا شیرینه امروز غذا غذا نمیدونم شوره آب شیرینه نمک بگو بیا بزیستش. حالا نیاز نداره که اینقدر غر بزنی رو سر خانومت زحمت کشیده برات غذا درست کرده حالا تو اومدی دلشو داری میشکونی رحمش کنون بنده خدا نکرت که نیست برات زحمت کشیده کار کرده از صبر نشسته برات غذا درست کرده قدان باش دام باش و این قددانی یاد بچه بودین بچه ها از ما یاد میگیرن تو زمانی که قدانی قد کردین شهای سر سفره چیزا کللا خیر زحمت کشیدی. اون زنه از شرمندگی و خجالت نمیتونه نگد بکنه وقتی که تو زبان شکر گذاری داری نه که زبانه غور زدن که ککی اون زن که این شوهره بره بیرون که راحت بشه بعضی اینطوری هم جدا دارم میگم انزن خسته میشن تو خونه از بس که اون مردا فقط ای و ایرات لباس نبودن غذا رو همه چیز ایراد میگن. این اخلاق خوبی نیست، این رفتار خوبی نیست. سفت و محکم، هم خودتون هم بچه بار بیان زبان گذاری داشته باشیم. خودشان در مقابل کسی که به ما احسان میکنه خوبی میکنه، از وقت خودشون به ما اکرام میکنن چه از همسر چه از بچه هست زبان شکر داشته باشیم. چرا رسول الله علیه و میگه اگر شما نمیتونید به سپاس اون خوبی، خوبی را بهش بر بگردونید پاداشش بدین پولی، چیزی، هدیهی، کادویی. حداقل اقل بگو جزاکی الله خیر او جزاک الله خیر اگر زنی جزاکی الله خیر الله جزای خیرت بده به زبان خود اصلا بگو نگو به عربیش بگو الله جزای خیرت بده سحمت کشیده دلش خوش میشه وقت همین کمتنین چیزی که شما میتونید مکافه بدید پاسخ خوبیش همینه هر خوبی ایاد به خودمون بدیم در مقابل خوبی ها که میشیم کسی از وقت خودش ما میذاره زحمتی برام میکشه بگیم الله جزای خیرت بده زحمت کشیدی ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات رسول الله صلی الله علیه جوی گرفته بود برای خانواده از یک یهودی برای خوردن برای پختن جو یهودی جو میفره. رسول الله صلی الله رفت سفر خودش درع خودش رو داد بهش اون سپر آهانی زره داد بهش گفت که این بهاش این قده من این قد در ازاش از جو میگیرم. اگر تونستم پول برات بیارم این سپر من به من بر بگردون اگر من پول بهت نیوردم که دیگه این قیمتش من دادم معاوزه هست این رهن بذار پیشت باشه تا این مدتی این رهنه درسته ولی این که الان طرف میره ملک خودش زمینه یا نمیدونم خونه و مغازه است به عنوان رهن دیویس بینو پیش میگیره اون اجاره اون مغازه یا اون منزلی که ده میلیونه براش نصف میکنه 5 میلیون ازش میگیره یا یک میلیون ازش میگیره آره، یا هیچ ازش هم نمیگیره این حرامه این و عین رباس در شرع کل قرض جر نفعن فهو ربا هر قرضی که منجر به سود بشه رباس این سودی هست که داره طرف میبره از اون خونت در ازاش پول گذاشته پیشت تو داری سود بهش میدی سودش چیه؟ نشستن تو اون خونه کرایهش ده میلیونه تو الان کرایه ازش نمیگیره به خاطر سود پولی که در ازای اون پیشت گذاشته اون طرف مقابل. این حرامه الهایی که ضمانت باشه و. که پولش دوباره برگرد و مسئله دیگه است آش چک گرفته یا پول پیشی گرفته فردا لوله شیری چیزی شکست برقی خراب کرد یا دیر از خونه بیرون رفت به عنوان ضبانت و مشکلی نیست و این به عنوان که در اش اجاره نگیری یا از اجاره کم بکنی این عین رباس این عین رباس. این رهن نیست اسمش گذاشتن رهن مثل همون مشروب که اسمش گذاشتن آبجو اسمش عوض بکنی حقیقت ربا عوض نمیشه حالا هرچند که اسم شرعی روش بذاری رهن اینه که تو یک کالایی بخری اگر پولش نداشته باشی به قیمت اون یه چیزی جنسی بذاری پیشش یک مدتی باش عقد میبندی باش قرار میکنی که اگر من تا اون مدت پولتو نیوردم این جنسی که گذاشتم ماله خودة الله مي خاد ساعات بشه الله مي خاد هالشي زيجي وش سيسادو سيوت شارو مين حديث نموه ترجمه رحمه الله مقيات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داوود الحفري عن سفيان عن الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه حدث صحيحه حدثه أناس بن مالك رضي الله عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام حج رفتن رسول الله عليه الصلاة والسلام حج رفتن باشطور يا أولاق يا اسم باشطور چرا شطور چون زين انجا از الشيات شده رح درسته با اون زینی که روی شطر گذاشته میشه گفته میشه رح خوالا اون رحلی گذاشته زینی گذاشته شده چیه؟ رثه یعنی چی رثه؟ یعنی قدیمیه کهونه هست زینه که رسول الله علیه سلام روش نشستن بر روی اون شطر کهونه بود و علیه قطیفه قطیفه پارچه هم هست فرزدار غلیس خشب روی اون زین هم یه پارچه گذاشته مثل گونیمانند رسول الله صلی الله علیه سلام روی اون درهمه. یعنی قیمت خیلی کمی اندکی یعنی قیمت نداشت اون زینی که روی شطور رسول الله علیه و سلم بود که رسول الله علیه و سلام سلم اونجا روی شطور حجشون با این ذکرم شروع میکنن و تنها جایی که یاد شده بانوان نیت کردن و به زبان آوردن در همینجاست حج در نماز روزه چیزی به اسم نیت نداریم و اینجا هم چیه نویتو توش نیست و نویتو ان اللهم اجعله حج بار حج امرا بدون ریا و بدون اینکه شیفتگی و سمعی درش باشه که بخوام فخفروشی فروشی بکنم توش قرار نده حج خالصانه باشه به درگاهت باره لا دعاست باره این حجم را خالصانه برای خودت قرار بده بدون ریا و بدون اینکه خودنمایی توش بشه بدون خودنمایی حالت واتساپش نگاه میکنی خودنمایی حالت تلگرامش نگاه میکنی خودنمایی احرام پوشیدم لبیک اللهم لبیک جلو خونه خدای صادم از این برعکس میگیره از این برعکس میگیره از این عکس میگیره میگیر بعد وقتی که احرام میبنده اللهم اجعله حجا لا ریاء خب فيه عکس میگیره تو داری میگی لا ریاء خب ان فيه عکس برای چیه خب این نه خودنماییه خودتو به نمایش خود داری میزنی که خود به نمایش گذاشتی تو میگی ریا یعنی چی عدم خودنمایی تو الان داری عین خودنمایی رو داری میکنی عین خودنمایی یعنی برای الله نیست از همون اول همون جایی که سوار اتوبوس نشستی لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک بره الله نه برای مردم نقص کردی نیتت نقص کردی عبادتت برای مردم شد نه برای الله جل وعلا اینو خیلی حواسمون باشه خیلی حواسمون باشه تو مسجد تراویح تهجد نمیدونم بخوای بری ریا نباشه سمعه نباشه خودنمایی نباشه یک عکس هم بیشتر نیستا تو حالت میذاری نمی‌دونم برای اینو می‌فرستی تو این گروه میفرستیم ما احرام بستیم ما سوار حپی ما شدیم و این رسم غلط خود و ماشین وقتی که حاجی ها که میخوام برن پارچه سبز می‌بندن روی در شون غیر از اون پوسترها و نمیدونم چیه غیر از این که این ریا هست فخ فروشی و خودنمایی چون حاجی شده رفته پارچه سبز بس در خونه خب که چی بشه میخوای بگی من حج رفتم حاجی شدم از کجا منو که حجت قبول شده ازلن؟ بخاطر همینه که رسول الله علیه ست و داره یادم میده با زبانش. داره به میگه حج به غیر از خودنمایی بارله ها به غیر از ریاکاری توش باشه برا من قرار بده که به درگاهت خالصانه باشه برای خودت باشه. نه برای کسی، برای خودت، به درگاه خودت. هر عملی که انسان در شریعه داشته باشه، شنوند در حدیث دریم حدیث قدسی که الله جل و علاه من عمل عملا اشرك فيه آیا غیری ترکت و شرک خودش و شرکش الله میگره هم میکنم هر کسی شریکی برمان قرار داده با خاطر کسی با این اون الله میگه ترکت و شرک خودش و شرکش رها میکنم سیصد و سی و پنجمین حدیث امام امتداد الله میگیاد حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا راوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك حديث صحيح حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه ني نز اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هیچ کسی محبوبتر از رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول نبود از مادر و برش براشون عزیزتر بود شمشی جلوی کی کشیدن جلوی پدرشون جلوی امو برادرشون از پدرشون رسول الله صلی الله علیه براشون عزیزتر بود ولی با وجود زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و براش و کان اذا لم يقوم و اذا می دیدنش بولان نمیشودن چرا؟ لما يعلمون من كراهته لذلك چون می دوس رسول الله صلی الله علیه و آله براش بولان بشه از تواضعشه دوستن داشتن حتی تا که هم سخت با این قضیه برخورد میکنن همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نحب ان يقوم له الناس فليتبوأ ما قعده من النار جای اون شخصی که دوست داره مدوم براش بلند بشه جهنم باشه بعضی از پدران متاسفانه اینطوریه اگر بچهش براش بلند نشود داد و بیداد میکنه یا بعض بعضی از معلمان تو کلاس وقتی که میاد باید براش همه بلند بشن یا حتی نظامی ها رسول الله علیه الصلاه و سلم از این خضیه من کردن برپایی انسان برای الله جل و علا باشه نه برای خلقی از خلق که سبب بشه که کبر خودش رو به نمایش ما در بیاره یا زوربازی خودش به نمایش در بیاره معلم اینطوری دیگه زوربازی شو به نمایش میذاره جلوی چهار تا بچه که میخواد بگه که خب من بزرگترم و من. نه توازای داشته باشه. اگرم رسل شده تو عنوان یک معلم دار، بچه ها بگو من اومده بلند نشیده. درسته که این هست نظام هست گذاشه شده بلی که برای من بلند نشید. اینو خودت اصلاحش بکن یادشون بده. سی سد و سی و حدیث. أمام الترمذي رحمه الله من حدثنا سفيان بن واكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أن بنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم كين حديثه قابلان دعوشتي مليين قسمته شنها دعوشتي قسمته مبعدش وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلأل وجه تلأل القمر ليلة البدر اینو داشتیم ف کل حدیث به طولیه قت حدث قبلا یاد شد قبلا این حدث رو داشتیم حیث ضیفه حی ضیف ال خیلی از مطالبه که در این حیث اومده من حدث و کامل نمیخوام چ فقط سریع رد میشهم از اون مطالبی که در این حدیث هست و عنوان که اگر مسئله ای هست میدونیم که در این حیث مقصودش شیه. خب حالا بریم به اون قسمتی که نخندیم از این حدیثسی که حچنگ ضعیفه خب حسنم نلی ودی الله الله از اینجا شروع می کنیمیم که نبوده. حسنه ابن علی رضی الله عنه از دایش میپرسه وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم آله چه خبر بیده که بعضی چیزاشو قبلا داشتیم اما چیزهایی که اینجا اومده از اینجا شروع میکنه فکتم توها الحسین زمانا این حدیث را میگه به حسین رضی الله عنه برادرم نگفته تو محدثته فوجدته قد سبقني الیه وقتی که بهش گفتم دیدم که غرض من سبقت گرفته رفته از دایم پرسیده یعنی از هند فساله عما عم سالته عن اون چیزی که من پرسیده بودم پرسیده بود ازش و در بعض از نسخه ها سأل ابی از پدر من پرسید علی بن ابی طالب خصوصا عن مدخله و مخرجه و شکله فلم ید امن هو از دخول خروجش از شکل شمایل رسول الله صلی وسلم هیچ چیزی رو را راها نکرده بود یعنی حسین رضی الله عنه یه سری چیزها بیشتر از من میدونست که از پدر من پرسیده بود علی بن ابی طالب رضی الله عنه اما آن چیزهایی که اینجای ما به از این میاره اضافه بر اون روایتی که قبلا داشتیم علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه کان اذا او الى منزله زمانی که می عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزل جزاء دخوله ثلاثه اجزا واس زمانی که می وقت خودشو رو تقسیم میکرد سه قسمت جزئا الله و جزئا اهله و جزئا لنفسه سه قسمت میکرد یک قسمت برای الله جل و علا که بیسه و یک قسمتش برای خانواده که باشون بشینه و بخوره و بخواه. و یک قسمت برای نفس خودش برای خودش که بعد اونم تقسیم میکرد تو مجزا جزء بینه بین او و بین الناس. اون جزء خودش را تقسیم میکه بین خودش و مردم. فیرد ذلك بالخاصه على العامه. چکار میکرد؟ اون وقت خاصه خودش را میداد به افراد خاصی که اون خاصهاش نمایندش باشن بیش مردم. که اون چیزی که بهشون میگه را ابلاغ بکنم به مردم. ولا يدخر عنهم شيء. و هیچ چیز از اونها ها پنهان نمیکرد. همه چیز را انها به اونها میگفت فکر میکنم به های خودش. خب ولی این وقت که تقسیم میکرد. ابتدای دخولش. خدا هرچند که اینها دیگه منافاتی نداره البته با حادیث دیگر صحیح وقتی که به با او بکر عمر رضی الله عنه میداد به دیگران نمیداد مثل اون حدیثی که هست که رسول الله صلی علیه وسلم سر چوهی نشسته بودن او بکر عمر بغلش بودن رضی الله عنه بعد عثمان رضی الله عنه وارد میشه تعامل خاصی داشت با اون بزرگان که پیش قبل از همه مسلمان شدن باهاش ایستادگی کر جانشون رو فدای رسول الله صلی الله علیه کردن، کل مالشون در اختیار رسول الله صلی الله قرار دادن، خب مثل هم نبودن. و همچنین در ابلاغ وحی در اون کسانی که پیشگسوت بودن در هجرت، در هجرت از مکه به مدینه برای دعوت دادن، دوکن من سیرته فی جز الامه، یک قسمت از وقت خودش هم گذاشته بود برای امت، برای خود خوندن، موعظه کردن، صحبت کردن در مسجد، اِثار اهل الفضل، رسول الله علیه الصلاه و السلام در اون وقتی که به خواص میداد اونهایی که اهل فضل بودن را بیشتر بهشون توجه می‌کرد، خصوصاً اونهایی که قصدشون فقه در دینه و یادگیری دینه، خصوصا مثلا گاه وقتی از جاهای دور می اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونطوری در مدینه 20 روز نشستن رسول الله علیه و سلم وقت خودش رو داد به اونها 20 روز، 20 روزی که تمام شده گفت که الا بید بر, بر بگردید به قومتون یاد بدید. خب توجه خاصیه اون کسانی که اومدن خصوصاً طلاب علم، بخاطر همین رسول الله علیه و بین منبری و بیتی روضه من ریاض الجنه بین منبر من و خونه من باقی از باقی بهشت بخاطر اون صحابه که منتظر بودن رسول صلی وسلم بیاد ازش یاد بگیرم. اثار اهل الفضل با اذنه و قسمه على قدر فضلهم في الدین و قسمه على قدر فضلهم في الدین هر کدوم از اونها به اندازه فضلشون در دین و دین داری مکانت جای و جایگاهشون وقت خودشو بیشتر با اونها میداد فمنهم ذو الحاج اونهایی که می اومدن از مردم پیشش خب کسانی هستن که یک تقاضایی دارن و من هم ذل حاجتين و من هم ذل حوائجی یکی دو تا کار داره یکی سه تا کار چهار تا کار داره هر کسی بر حسب نیازش رسول الله عز و وقت خودش رو بهشون میداد برای یاد دادنشون یا برای حل مشکلش فیتشغلوا بهم مشغول اونها بود برای فیصل دادن و مشورت دادن ویشغال هم فیما يصلح هم و الامه. اون چیزی که به صلاحشونه، به خیرشونن از امر دین بهشون یاد بده. الله خصوصا اینجا شکر از در شرحش میاره. یعنی کل اون اموری که مردم باشون مینشسته را میگه که همش امور دینی بوده. خصوصا اینجا که میگه که من مسائلتیم عنه و اخبارهم بالذی ينبغي لهم. اون سوالی که دارن، ای که دارن. اون چیزی که میخوان از رسول الله عزت و السلام بشنوان همش در فقه دین، ای فقه‌هم فقدهم فی الدین و ارشدهم و ادلهم. این رسول الله عزت و السلام کوتاهی نمیکرد، از اینکه وقت خودش رو بده برای اینکه دین یادشون بده و یا قول او لیو بلغ شاهد من کم الغائب. خب شما شی ندید از من، کسانی نشنیدن پس شما ابلاغ بکنید به کسانی که نشنیدن. خب اینا چیه؟ این یعنی اینکه مردمی که حاجت داشتن، نیاز داشتن، اما پیشش برای طلب علم نبودنیا، دنیا اومدن برای طلب دینشون. برای اینکه که در دین چیزی یاد بگیرن نه برای دنیا فیرات دو بالخاصه علی الامه که اینم مشخصه اون توجهی که رسول افترسان به خواس داشت حالا این در شرح میاره شیخ خدر ازا خب اینجا اگر نگاه بکنیم بر به اونجا میتونیم بفهمیم خواس را ارجاع میداد به عوام یعنی که خواس رو یادشون میداد که برن به اون عوام یاد بدن به عامه مردم یاد بدن حاجة من لا يستطيع إبلاغها انتوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بخواسش اگر کسی حاجاتي داره نمیتوني انجابیاد شما بمن ابلاغ بکنید بگیت فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها سلطاني هاس حاكمي هاس رهباري هاس ها کسی دستش نمیرس بهش کسی هاس جاد مريضا نتون بیاد میان جگری کرد می اومد وقتشو گذاش برای اون صاحب حاجت بدونه که الله روز قیامت ثابت قدمش میکنه اکرامش میکنه با اون ثابت قدمی در جلو الله جل بعد در صحنه محشر لا یذکر عنده الا ذلك یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه چنین بود یعنی توصیه این این چی میخواد این حاجت چیه این چه چی مشکلی داره حل بکنه با اون حدیثی با آیه قرآنی ولا یقبل من احد غیره غیر از این قبول نمی‌کرد یعنی مجالسش باید علم باشه دنیا قبول نمی‌کردن یعنی که بیاد کسی حرفه تجارت و اینا بزنه مثلا در مسجد رسول الله علیه, رواد علیه و سنت و سلام یدخولون روادن یدخولون روادن رواد خواص اصحاب رسول الله صلی الله علیه و از بزرگانشون ولا يفترقون الا عن ذواق نمید نظر صلی الله علیه و سلام بعد از اون بحر گرفتنشون و خارج نمی‌شدن مگر با ذواق یعنی با اینکه سیراب شدن از علم سیراب شدن از علم اون تشنگی نسبت به علم داشتن برطرف شده یعنی خیر بزرگی بهره بزرگی از فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم ازش بهره می‌بردن و یخرجون و یخرجون ادله یعنی علی خیر. یعنی اونها کمی مدان نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد می‌گرفتن داعی خیر می‌شدن خیرخواه مردم می‌شدن می‌رفتن به دیگران اون خیری که یاد گرفتن ابلاغ میکردن. قال فسالت عن مخرجه كان يصنع فيه قبلان خب وارد منزل شد منزلش هم این و اون اومده برای یادگیری و مجالست با رسول الله صلی برای ابلاغ دین اما خروجش هست خونه قال كان رسول الله صلی الله و آله و تسلم لسانه الا فيما یعنيه یعنی رسول الله صلی الله در غیر از امر دین حرف نمیزد در اون چیزی که به صلاح اخرتش باشه در امر دین و یؤلفهم و همیشه حرفش به خاطر تعلیف بین قلب مردم بود اصلاح بین مردم ائتلافشون الفتشون و لا ينفرهم کاری نمیکرد که مردم ازش متنفر بشن یا مردم از همدیگر زده بشن حالا غیبتی دروغی حرف ناشایستی تنخوی و تنمزاجی هیچ کدوم از اینها از رسول و آسان صادر نمیشود تعاملش همیشه با نیکی بود و یکرم و کریم کریم کل قوم یوالیهی علیهم همیشه بزرگان اون قوم تکریم میکرد خصوصا زمانی که پیششون می اومد هر کسی رو در جایگاهش میذاشت بهلاخر خب یک کسی شیخ قبیله هست بزرگ قومی هست جایگاه خاصی براش قائل میشد و او را به خودش نزدیکتر میگذاشت و حرمتشو نگه می داشت با اکرام او یحذر الناس و یحترس منهم و یحذر الناس بعضی هستند خوتون تون مزاجن رسول الله صلی با فروتنی با تواضع با مراعات حالش باش تعامل میکرد بدونی که بهش بر بخوره بدونی که حسنال میدونه این شخص تنخو هست بعد ازش برحذر باشه لبخندی میزد با خوبی باش برخور میکرد که دیگه اون شخص تنشش عصبانیتش بیشتر نباشه مراعات میکرد این قضیه خصوصا آخر مردم یک خصلت ندارن یک طبیعت ندارن رسول الله و السلام اینو موازه بود در تعاملش یک کسی به قول خودمون دل نازوکه. زود نازوکه رنجیده میشه خب مراعاتش می‌کردی حرفی نزنه که رنجیده بشه مثل اون زنی که قبلا داشتی زنی که اون من نزد رسول الله صلی گفت خب که پیرزن وارد بهش نمیشه خب نراحت شد گریه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت صداش بزنین گفت که خب, خب, خب این صباتی گوارده بهش میشه جوونه پیر وارد بهش نمیشه خیلی براش مهم بود که دل کسی شکسته نشه اینها مراعاته از اینکه که فردا کسی نیاد بگه به من ذل شده و رسول الله عزت و جل خودش محاسب میکرده می‌کرد یعنی روی حرفا و تعاملش من غیر انیت عن احد منهم بشره و خلقه بدونی که صورت خودش رسول الله عزت و وسلم در هم بکشه یعنی اخو کنه برای کسی یک جا رسول الله صلی الله علیه و سلم اخم به صورتش میاره اونم نابینا بودم ندیده اینم کمال اخلاق رسول الله عزت الله علیه و وسلم عس و تولا چراشو کرد خم به ابرو برد انجاه الاعمى نابینا خب نابینا ندیده الله جل وعلا چی میخواد بگه میگه از پیغمبرمون یک خم ابرو کشیدن قبول نداره بعدا نگید که خم ابرو کشیدن و چهره در هم کشیدن درسته چون پیغمبر علیه الصلاه و السلام چهرهشو در هم کشید خم ابرو آورد و نمیدونم اخ کرد نه, نه نه رسول الله علیه الصلاه و السلام حتی نابینا یک بار خم ابرو آورد الله گفت که نه حق نداری نه که رسول الله علیه سات و السلام عصبانی نشوده منکری میدید باش برخورد نکرد ولی اینکه تعاملش با مردم در نشست و برخاست با تون و تنمزاجی و خود و غرور و کبر رو اینا باشه نه رسول الله علیه و همیشه تواضع داشت خوشتان این چیزی که الان ما بچه شاهد این حدیث در این باب داریم بابی که داریم میخوایم بحث فروتنی رسول الله علیه و هست خام به ابرو نمیوه رسول الله علیه و سلم و اینم نس قرآن بر این قضیه عباس و تغلب جه الامام یک برا یک نابینا یک سوالی ولی الله جل و علاج لوش میگه نه آخری باشه دیگه خام به ابرو نه کسی این نابیرا هم ندیده بود این کمال اخلاق رسول الله علیه و السلام اینی که الله جل و علا خیر براش مهمه بندگانش حسین از رحمتش ها. بندگانش همیشه دل پاکی نسبت به هم دیگه داشته باشن دل کسی شکسته نشه رنجیده نشه خلق الله جل و علا برای الله جل و علا مهمه نه فریده اونها شکنجه ببینن درد ببینن الله خیر بندگانش رو میخواد و يتفقد اصحابه رسول الله علیه و جویای حال اصحابش بود کی اومد کی نیومد کی مریضه کی رنجی کی بدهی داره و یسألون ناس عما في الناس اخبار و امور و مردم میشنید یعنی کسی چیز مشکلی داره مثل اون زنی که وفاتی یافته بود که مسد و پاک میکرد کجاست چرا نیست براش مهم بود حتی اون زنی که مسد و پاک میکرد رضی الله عنه و یحسن الحسن و یقویه و یقبیح و يوحیه. اگر تو مجلس رسول عائسه و سلام حرف خوبی زده میشد تشویق میکرد بر اون امر خیر ولی اگر حرف زشتی زده میشد کار زشتی بهش بیان میشد او را زشت میشمرد ساکت نمیشد در مقابل زشتی معتدل الامری غیر مختلف رسول الله علیه و سلام امورش همش روی عدل بود روی میان روی بود نه روی اختلاف افکنی و تفرقه اندازی و یک طرف خرو کردن و خصوصا زمانی که مراجعه میشه به انسان از خیشیشه به اون کسی که خیشش نیست مثلا ولفرض محل نده یا برحلهش حکم بکنه این را همیشه ما باید مراعات بکنیم یا یه کسی پدر یه بین بچاش اینو بیشتر دوست داره یا این چون از فرزند فلانیشه بیشتر بهش توجه داشته باشه خب این قضیه ما درمانش داریم در قصه یوسف علیه الصلاه و السلام و یعقوب که الله جل و علا میگه یعنی حسادت کار به کجا کشون و خب یک توجه خاصی پدرشون یعقوب علیه الصلاه و السلام پدر برادران یوسف داره به یوسف و حسادت می‌ورزن که حقم نداشت حسادت بورد ولی خب شد و این جریان همه پیش اومد به خاطر یک توجه خاص بی یوسف از یعقوب علیه سات و سرم. که اینجا باید ما بهش توجه بکنیم نه که به یک فرزند توجه داشته باشیم خوصا مادرها که پسر دوستن یا پدران هم هم نسبت به هاشون یعنی یه تعصب خاصی یه چیز جاهلیت توی ما هست همیشه به دختر به چشم خاری نگاه میکنه و به پسر به چشم سربلندی و افتخاری همین توجهه سبب میشه که فردا همون پسر باعث تو سری خوردن همون پدره بشه اینو مواظب باشید یک طرف میل نکنید طرف توجه نداشته باشید معتدل باشید لا یغفلو مخافتا یغفلو او یمیلو همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله هوشیار هوشیار حسین در حرف کنارش زده میشه زمان کسی پیشش می رسول الله علیه الصلاه و سلام با توجه می نشسته حرفا رو می و خیلی هم حریص بود بر اینکه کسی از رسول الله علیه السلام نکته نگیره چه در نشست و برخاستش چه در حرف زدنش فردا نگن که رسول الله علیه السلام داشتیم باش حرف میزنیم دراز کشیده بود بس خلاص درس کشیدن در مجلس بگیم که کار درستیه و کار پسندیده اینه رسول الله علیه و السلام تو مجلسی که میشه از دچار غفلت نمی‌شد حواسش جمع بود در مجلسش حواسش به همه بود در مجلسش حواسش به همه بود تا کسی دچار سستی و خستگی نشه چون اگر مثلا بلفرض من اینجا نشستم فقط به این ور نگاه کنم این ور نگاه نکنم تا کسی خسته نشه ملول نشه لکل حالا عنده هو عتاد لكل حال عنده عتاد یعنی برای هر یه توجه خاصی داشت ارشاد میکرد هر جایی جایی که نیاز به شوخی بود شوخی میکرد جایی که نیاز به نصیحت بود نصیحت میکرد چنانچه داشتیم قبل شوخی های رسول الله علیه الصلاة والسلام جایی که نیاز بود به شوخی شوخی میکرد ولی شوخیش حق بود لا یقصرو عن الحق ولا یجاوزه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حق گویی عقب یعنی حرف حق جایی نیاز بود میزد ولی با ادب ولا یجاوزه یعنی حدش هم تجاوز نمیکرد در حد انکار منکر در حد اصلاح اون منکار و در حد امر به معروف.الذین یالونه من الناس خيارهم و كسانی که جلوبر رسول الله صلی الله و وسلم بودن و بیشتر باش بودن بهترین اصحاب و یاران رسول الله علیه صلی و وسلم بودن.افضل هم عنده عمهم نصیحه بهترین صحابه و یاران نزد رسول الله صلی الله علیه و کسی بود که لحاظ دعوت و همیت به مردم در اصلاح امر مردم و خیکهای مردم. بیشتر کوشا بود اون کسی که خیرش به مردم بیشتر میرسید توجه رسول الله صلی الله علیه و به او بیشتر بود و اعظمهم عنده منزله احسنهم مواساه و مؤازره کسانی که جایگاه بزرگی نزد رسول الله صلی الله علیه و داشتن کسانی بودند که اهل مواسات و اهل کمک و یاری به مردم خوبی به مردم بودند اونایی که در دلداری و غم و اندوه مردم شرکت میکنن مشارکت دارند با مردمن، هم مردم هم همغم مردم براشون مهمه خوشی مردم براشون مهمه قالا فسالتوه عن مجلسه سؤال فورسي تماز مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام مجالسش چه زمانك بلان مشهد چه زمانك منشهس بذكر الله جل وعلا بود بمجلس بمجلسه ورد مشهد انتهى يوم مجلس منشه حتى قدم در باشه دنبال صدر مجلس نه که صدر مجلس بیشینه. این از آداب مجلسه. زمانی که وارد شدی، انتهای مجلس بیشینی. نه اینکه دنبال اینکه بالا بیشینی، روبری مردم بیشینی یا کنار بزرگی بیشینی. چون بعضی اینطوری. خصلتشونه بر اینکه تصدر داشته باشه کسان در مجلس یه جانشین، بزرگانشین ها، این بچه یا این جوان یا این نوجوان درسی خونده یا چیزی بلده میخواد تو جام بگه که منم یه چیزی بلدم میخواد، هی hey, پرحرفی بکنه حرف بزنه. رسول علیه و الله علیه و سلم چنین نبود یعنی بیشتر امرش چنان چین حدیث بهش شروع شد و احادیث دیگه هم داریم امر رسول اساساً بر سکوت بیشتر بود تا بر حرف زدن خصوصاً پرحرفی یک امر ممدوحی نیست خوشی نیست که قحاد اومدن بازم در ابواب دیگه جلوتر خواهیم داشت يعطي كل جلسائه بنصيبه زمانی که در مجلس می نشستهن رسول علیه و سنت به هر کس وقتش رو میداد برای حرف زدن دستشو بالا می کرد اجازه می گرفت رسول علیه و سنت اجازه حرف زدن را بهش میداد لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من زمن كسى نازر صل الله عليه وسلم من إيشاس فكنا مكابه ثلاث أديك نازر صل الله وسلم كسىهاس يعني كنان إكرام مش مكابه خبي تعامل مكاب فمكاب دنيا شخص خيلي بجويراسيد يعني من جلسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه زمانی که کسی حرفی حاجتی داشت نزد رسول الله صلی الله علیه و می می‌نشست به تا اینکه حرفش تمام بشه حاجتش رو بگیره او بلند بشه بره نه اینکه رسول الله صلی الله علیه و فرار بکنه از دستش می نشست تا اینکه حاجتش برآورده بشه تا اون شخص خودش بره و من و حاجه لم يردوه الا بها یعنی زمانی که شخص حاجتی میطلبید از رسول الله صلی الله علیه و آله دست خالی برش نمیگردون اون چیزی که می‌خواست بهش میداد اگرم نداش او بمیسر من القو... اگرم نداش حرف خوبی بهش میزد دلش به دست میورد یعنی بدون پاداش یا بدون چیز رهاش نمی کرد بدون حرف سخن خوبی او رو رها نمی کرد که برنجه نداره رسول الله صلی الله علیه و بهش که بده اون چیزی که میخواد حرف نیکی باش میزنه قد واسع الناس بسطه و خلقه قد واسع الناس یعنی چنان رسول الله صلی الله علیه و بود با مردم می نشست،, نشست و برخاست، داشت که سفره برای همه په بود، نه برای کسی خاصی، اون کسای خاص فقط برای علم و نشر علم، اما در نشستن سر سفره مردم، کنار مردم، برده دعوتش میکردن میره. این کمال اخلاق رسول الله عز و سلامه. فصار لهم ابن. یک پدری بود برای صحابه رسول الله عز و السلام پدر معنوی ها، نه پدر دنیوی، پدر دینی. اما اینکه رسول الله عز و فرزند پسری داشته باشه که که بونوانه یک پدر حسی باقی بمونه الله جل وعلا نخواسته سه تا فرزند بهش داد قاسم و عبدالله و ابراهیم که هر سه در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا میرن به الله جل میگه ما کان محمد اب احد من رجالکم اب احد رسول الله صلی سلام پدر هیچ مردی نبود از میونه شما ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما رسول الله صلی الله علیه و سلام خاتم النبیین الله نخواسته که فرزند پسری ازش باقی بمونه نسل رسول الله عز و السلام همه دخترانشان و صاروا عنده في الحق سواء همه اصحاب یاران حضرت رسول الله صلی یک درجه داشتن در تعامل در برخورد رسول الله و سلام. مجلس و مجلس علم و حلم و حیاء و امانه و صبر مجلس رسول الله صلی مجلس علم تعلیم حلم و بردواری حیا امانتداری داری یعنی در تعامل رسول الله صلی اگر حرفی میزد نشر علم بود اگر کسی حاجتی داشت صبور و حلیم و بردوار بود نسبت به دیگران در کاری که اگر ازشون هم می‌خواست رسول عائسه و سلام حیا داشت شرم داشت مثل بعضیا پرو نبود حالا چه در امر و نهی کردن چه در خواسته ای که دارن از کسی چون حالا میاد در احادیث بعدی یکی از خصلتای بد پررویه که انسان هر خواسته ای داره از این و اون به طلب و خودشو مستحق اون چیزم بدونه حالا غیر از اینکه مجالس رسول عائسه درش امانت و صبر بود امانت در اینکه حفظ اون مجلس بشه در اون حرف اگر خاص بود دیگه از اون مجلس بیرون نره اگر کسی اومده بود حاجتی داشت دیگه فورا نگه آب برن به زن و بچهش خبر بدن ها این قصد ازدواج داشت اونجا اومده بود ق مشورت داشت که زن دوم میخواست بگیره فورا برن مثلا یه کللا که هیچ اینقدر نمامی میکنن پشت سرش اینقدر دو به همزنی میکنن که اون زن اول دیگه بره طلاقش میگیره یعنی هدف هم همین ها شیاطه انس دست وز دستوییکی میشه اگر یه خبری از جای رسید تو امانت باش، حفظ امانت کن، این برادرت، حالا بلفرز، خوهرتم باشه، اون طرف مقابل اگر شنیدی، تو به خاطر حرمت دین الله جل و علاک، که الله جل و علا این چینی شرحی گذاشه تو حداقل این کلا. حالا خیلی مسئله جز مسئله بزرگ تو جامعه که دیگه کسی زبونش رو نگه نمیداره، یعنی بفهمن فلانی زن دوم گرفتی یا میخواد بگیره دیگه انقلابی برپا میشه اصلا. شیپور بجاست میگیرن اصلا جار میدن تو بلندگو ها تو هر مجلس دیگه نقل و نبات مجلس میشه و چیزی دیگه به اسم امانت داری و غیبت نکردن و نمامی نکردن دیگه نیست اصلا ببین مردان انگار اصلا اینا حرام نشده و مجلس رسول الله صلی الله علیه و مجلس صبری بود مجلس صبر دلداری دادن مجلس تسکین دادن لا ترفعوا فیه الاسوات هیچ وقت صدا در مجلس رسول الله صلی الله علیه و بلند نمیشود کسی به کسی بی نمی کرد بی احترامی نمیکرد ولا تئبن الحرم یعنی هیچ کسی مرتکب حرامی نمی شد نه غیبت نه نمامی نه از خبرچینی نه از مسخره کردن و الی آخر در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلام اون حرمتها خط قرمز بودن غیبت حرامه برخورد می شد با اون کسی که غیبت بخواد بکنه اینجا مجلس رسول الله علیه و سلام همه هم پایبند بودن و به خاطر همین در ادامه حدیث خواهد می اد و اصل فلت یه چیزی حرف کسی با بی اندیشگی حرفی بزنه حالا مثلا قیبت از ذهانش در اومد اگر کسی تو اون مجلس یه حرفی می رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتش میکرد یاداوریش میکرد برای این که چی؟ دوباره تکرار نکنه ولی توت نه یعنی دوباره تکرار نشه اون اشتباه فلتاتو یعنی اگر نصیحتی میکرد نصیحت میکرد از این که دوباره تکرار نشه نمی‌ذاشت یعنی کسی دو چهار حالا اون اشتباه لغزش شده اون لغزشه دیگه کسی دیگه مرتکب بشه یا خودش دوباره تکرار بکنه متعدلین رسول الله علیه و السلام تعاملش با عادل بود در اون ملاقاتش در اون تعاملش با اشخاصی که جلوروش نشستن بلکه كانوا فیه به بالتقوى اگر فضل کسی بر دیگری داشت در اون مجلس با تقوا بود این اکرمکم عند الله اتقاکم متواضعین همه نه که رسول عیسی همه با هم دیگر با تواضع برخورد می هیچ کسی خودشو بهتر از دیگری نمی دید نمی دید. یوقیرون فیه و ویرحمون فیه الصغير همه چنین خصلتی داشتند احترام بزرگتر نگاه داشتند و با ترحم با کوچکتر برخورد کردند ویؤثرون ذل حاجه، ایثار میکردن در اینکه کسی اگر حاجتی داره وقت به اون داده بشه، با اون حرف زده بشه. و یحفادون الغریب کسی هم اگر غریبه به اون وقت گذاشته بشه، از وقت خودشون میگذاشتن از حاجت خودشون میگذاشتن برای دیگری، که دیگری اکرام بشه و با خوبی باش تعامل بشه و یاد خوبی از خودشون به جا بذارن. خوب این حدیث طولانی بود ولی خب دیگه مجبور شدیم دیگه این مسائل رو بگیم مطالب خوبی بود البته هرچند حدیث ضعیفه مطالبی بود که در دیگر حدیث به اشاره شدن و جا داشت اینجا یادآوری بشه سبحانك الله و سبحان الله و و صلی الله محمد و محمد